ها. هنوز تاریک تاریک است که بیدار می شویم ما به اراده بیدار می شویم نه به عادت زنگ ساعت کوله کوه لباس ها و کفش های نزدیک در آماده است بی صدا لباس می پوشیم کفش ها را به دالان می بریم و جلوی در خانه می پوشیم تا سر و صدا راه نیندازیم شب را دوست داریم و در شب راه پیمودن را بیزاریم از آنها که چراغهای دستیشان را به درون شب پرشکوه کوه, کوه میآورند شب را دوست داریم به خاطر شب بودنش نبا نوری فقیر، گیج، در بدر و بیفایده آن را زخمی کردن شب را، بوییدن شب را و نرم نرمک ناپدید شدن ستارگان را حالی میان شب و روز را از صبح کازب به صبح سادق و به نفس صداقت عینی رسیدن را صدای شب، صدای طلوع، صدای آفتاب را بیزاریم از آنها که صداهای شهری را به کوه میآورند ما موسیقیدانان بزرگمان را دیده ایم که برای شنیدن موسیقی طبیعت به کوه می آیند. خاموش خاموش در گنج طبیعت روی تخت سنگی مینشینند و پر می آن وقت شگفتا ابلهانی را دیده ایم که در کوه گوشهای خود را بر صدای طبیعت بستند و موسیقی شهری را به کوه آوردند. ما حتی دیده ایم که در چایخانه‌هایی که کنار آبچارها ساختند موسیقی شهری پخش می‌کنند. ما پیاده نوردان قدیمی همدیگر را در تاریکی شبانه نیز می‌شناسیم. ما به هم سلام می‌کنیم، صبح به خیر و تمامی روزتان به خیر من و تو در کور راه های باریک لغزنده در کنار هم نمی‌رویم. به دنبال هم می رویم. در پی هم بودن، گهگاه لذتی دارد بیش از کنار هم بودن. صدای قدم های تو را می شنوم، صدای نفس های تو را و تک جمله های ترا. بگذار شب سخن بگوید که سرشار از گفتن است و تشنه گفتن. شب انگار که فخر رازمندی می فروشد. کلماتش گرچه به زمزمه میماند ذره ای متواضعانه نیست غروری دارد که روز ندارد حق است که چنین باشد رازهای درون شب معجزه نیست اما زیباست ریاهای من تجدید حیات می کنند. احساس سبکی و سرزندگی می کنیم نفس های عمیق لبخندهای بی دلیل انگار که بوی خوبترین ترین اتر جهان را استشمام کرده ایم. بوی برف، پچپچه ها و زمزمه ها. جای عشق کجاست؟ اینجا، در سنگ سنگ کوه، در قطر قطره رود، در ذره ذره هوای ناب، در قدم‌های بی صدای نسیم سرد زمستان، پاییز. بهار یا تابستان بر بلندای قلعه دماوند یا لابلای برفهای علمچال و تخت سلیمان یا در سهند و سوالان من دیگر معجزهی در کار نیست این چیز مانند اراده به پرواز پریدن را آسان نمی کند زندگی را با کوه، با آسمان، با هدف، با ایمان و عشق پرباید کرد یا باید خالی و پوک و ناقابل نگهش داشت و نام زندگی را از روی آن برداشت در طول راه مشکاتیان موسیقیدان را میبینیم بیجنی خطات را استادمان شفیعی کتکنی را تعریف خوشصدا را کسانی که به ما نواختن ساز را آموختند و ساختن سفال را ناشر نخستین کتاب کوچک شعرم را میبینم جلال هاشمی ولایتی وزیر امور خارجه میهنمان را بدون محافظ، راحت و بیدقدقه چند وزیر دیگر بسیاری از بزرگان فرهنگ و ادب و سیاست گروهی از مبارزان قدیم و جمعی از آشنایان، رفقا و دوستان را اینها اگر نه یک پارچه لا غل قدری باید عاشق باشند و همان قدر هم درست. طبیعت یک عاشق کامل واقعی است چرا که هرگز خود را تکرار نمی کند؟ دو پاییز هم رنگ دو بهار همسان دو تابستان همگون دو زمستان مثل هم هرگز در تمام طول حیات انسان پیش نیامده است. این برگ را نگاه کن از این برگ عکس بیانداز. جایش را معین کن و رنگش را و حالتی را که به خود گرفته آیا سال بعد این برگ همینگونه خواهد بود؟ عشق دست کم باید مثل برگ درختی جنگلی باشد مثل همیشه و همیشه هم تازه و پرشور ما آن بالا در خلوت یا در کنار چند دوست قدیمی یک ساعت، کمی بیشتر یا کمتر، بدون کشیدن سیگار و بیان که همچون شپه فکران مست و لول و خمار باشیم، جدیترین بحث هایمان را می کنیم. کوه جای امنیست. می نشینیم. من چای را علم می کنم. تو هنوز و مثل روزهای اول به این حکومت یا به این نظام معتقدی؟ البته، اگر نبودم که اینجا نبودم، در سیاه کل یا پشت سوالان تو بودم، بسیار خوب، چه مانعی دارد که ما ضمن اینکه به چیزی معتقدیم و به آن اعتماد داریم از بیم آنکه مبادا آن چیز زمانی مورد تهاجم قرار بگیرد، سقوط کند، بی اعتبار شود و یا از راهی که ما قبول کرده این منحرف شود، مراقبت های ویژه را رها نکنیم، مانعی ندارد، پس چه مانعی دارد که ما همچنان بر سر بحث های پرشور سیاسیمان بمانیم و نیز آموزش های مبارزاتیمان را رها نکنیم به عنوان مخالف بالقوه ابداً به عنوان انسان ایرانی ما برای اثبات اعتقاد و موافقتمان من رعی می دهیم در تظاهرات شرکت می کنیم. با مخالفان بحث های منطقی می کنیم. به تولید ملی کمک می کنیم. در کلاس های مبارزه با بیسوادی درس می دهیم و خیلی کارهای دیگر را با سمیمیت انجام می دهیم و برای آنکه مبادا فرو برویم و باز به همان جایی برسیم که در گذشته بودیم به عنوان یک جناه اندیشمند نگران آینده تحلیل گروهی را رهانه میکنیم. کنیم ای نه؟ قبول تمام؟ بله اما از کجا این فکر به سرت آمده که باز ایجاد یک سازمان سیاسی لازم است؟ از آنجا که ته دلم همیشه می لرزد و از آنجا که ما حامل تجربه های عظیمی در مبارزه سازمان یافته هستیم، هر لحظه هم که نظام بخواهد و برحق باشد در رکابش می جنگیم حتی اگر هشتاد ساله باشیم، راستش را بگویم بانوی آذری من، ذاتت شر است میدانی مختصری و بگو که آیا هیچگاه شده است که از من به خاطر این شر بودنم یا به هر دلیل دیگر بدت بیاید میگویم راه بیفتیم تا جوابت را بدهم دیر میشود آشق گهگاه تنگ حوصله شکاک و مسترب میشود گهگاه گرفتار سو زن عشق باعث می شود که دلم نخواهد برای تو هیچ مسئله جز زندگی مشترکمان وجود داشته باشد. به همین دلیل وقتی می بینم که آدمها در دنیای تو در حال عبورند و به خصوص برخی مردان احساس خاصی پیدا می کنم که البته بد آمدن نیست. این احساس هم خودش بخشی از عشق است. اما بخش بسیار تلخ و آزارنده عشق عشق ضد منطق است و این بخش ضد منطقی ترین بخش عشق است چقدر حرف میزنی مرد میگویم برای خودم حرف میزنم من باید حرفم را بزنم ولی برای تو هیچ بایدی وجود ندارد نباید گوش بدهی و نه نباید گوش بدهی عاشق اگر واقع بین باشد حق دارد دلنگران باشد چون میداند که ممکن است خودش بهترین عاشق عالم نباشد و یا شبه عشق گهگاه تر از خود عشق شود میدانی میتوان به سادگی بر سرعت قدمهایت میافزایی کمی جلوتر رخ میگردانی و میگویی میدانم میدانم می توان به سادگی عاشق شد، اما عشق ساده نیست. عیبه ای تو این است که همه چیز را بیش از حد تکرار میکنی. میگویم درست است و خواهش میکنم باز هم بیادم بیاور تا این مشکل را حل کنم. میگویی و همین جمله را هم بیش از حد تحمل من تکرار میکنی. میگویم ضعف حافظه. برای آنکه تکرار نکنم لازم است کسی این را به من بگوید همه راه‌های حل مشکل را نبند این کار مقدمه است دردناک بر گرفتاری هایی که در راه است ما باید یاد بگیریم که جنس مشکل هایمان را کمی نرم کنیم میگویی اما تا آخر عمر نمی شود از کسی خواست که حرف هایش را تکرار نکند و تازه وقتی پا به سن بگذاری خدای من و پیر بشوی و پیرتر بشوی از این هم خیلی بدتر خواهی شد نگاه نگاهم را به جایی میرسانم که تو آنجایی نقطه وضوح نگاه من تویی و فقط تو سالیان سال است که تویی من خیلی چیزها را باید که با حوصله و صبوری جابجا به جا کنم تا تو از کدورت و محوی بیرون بیایی، تا هرگز شاید محو نشوی، کدر نشوی، مات نباشی، مبهم و تیره به نظر نرسی. همدیگر را فهمیدن و حس کردن، نه یکی شدن. میگویم، همانجا بنشین، من قدری خستم. تو همچنان میروی و میگویی همه نوههایت از تو خواهند گریخت، چرا که همیشه خیشتن را تکرار می کنی، از تو خواهند گریخت مگر زمانی که بخواهند به تو بخندند، و من خون دل می خورم از اینکه تو داستانی را باز می گویی که هزار بار گفته ای و هر بار هم در آن مختصر تغییری داده تغییری که از زعف حافظت سرچشمه می گیرد نقدرت خلاقت. آه چه خوب بس اقل هیچ داستانی را به شکل واحدی باز نمیگویم. جدی باش مرد جدی باش اما تو قدری توند می روی. من به تو نمی رسم این فاصله برای چیست؟ برای آنکه به تو بفهمانم که از این گونه حرف زدند دلگیرم اما هرچه بر فاصله به پیمودنش مشکل تر می شود هرچه از من دور شوی؟ صدای هم را در این معرکه عبور کمتر می شنویم می که اشتباه شنیدن چقدر قمنگیزه است؟ هیچ میدانی که اگر یک روز حرفی را از من نقل کنی که من گفتن آن را انکار کنم و تو شنیدن آن را اصرار چه پیش خواهد آمد؟ تأسف، تأسف. نفسم گرفت